فصل پنجم بعد از آن ایسا برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا میگویند در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودن. زیراحت چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخد داخل می شد و آب را به حرکت در آورد و اولین مریضی که بعد از حرکت آب به استخد داخل می گردید از هر مرزی که داشت شفا می یافت. در میان آنها، مردی دیده می شد که سی و سال به مرزی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد از او پرسید آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد ای آقا وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخ بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. ایسا به او گفت، بلند شد، بسترت را بردار و برو. آن مرد فورا شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است. تو اجازه نداری، بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت، آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بستر را بردار و برو. از او پرسیدن چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو. ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی زیرا زیان محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت. اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دو چهار شوی آن مرد رفت و به یهودیان گفت کسی که مرا شفا داد عیسی است چون عیسی در روز سبت این کارها را میکرد یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند اما عیسی بانان گفت پدرم هنوز کار می کند و من هم کار میکنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مسممتر ساخت چون او نه تنها ثبت را می شکست، بلکه خدا را پدر خود می‌خواند و بدین طریق خود را با خدا برابر می‌ساخت عیسی در جواب آنان گفت یقین بدانید که پسر نمی‌تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که می‌بیند پدر انجام می‌دهد هر چه پدر میکند پسر هم می کند. زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان میدهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده میکند و به آنها حیات میبخشد پسر هم هر که را بخواهد زنده میکند پدر بر هیچ کس داوری نمی کند او تمام داوری را به پسر سپرده است تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می‌کنند پسر را نیز احترام نمایند کسی که به پسر بی‌احرمتی کند به پدر که فرستنده اوس بی‌احرمتی کرده است یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد زیرا همانطور که پدر منشه حیات است به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشه حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است از این تعجب نکنید زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد نیکوکاران برای حیات خواهند برخواست و گناهکاران برای محکومیت من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم شهادت من اعتباری ندارد. ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می دهد و میدانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیا فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم. بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم یحیی مانند چراغی بود که سوخت و میدرخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دن که پدر مرا فرستاده است پدری که مرا فرستاده است. خودش بر من شهادت داده است شما هرگز نه او را دیده‌اید و نه صدایش را شنیده‌اید و کلام او در دل‌های شما جایی ندارد زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی‌آورید کتاب مقدس را مطالعه می‌نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب درباره من شهادت می‌دهد شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید من از مردم توقع احترام ندارم من شما را میشناسم و میدانم که خدا را از دل دوست ندارید من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمیپذیرید ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترام که از جانب خدای یکتا میآید توجه ندارید چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کس دیگری یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید شما را متهم نمی نماید. اگر شما به موسا ایمان می داشتید به من نیز ایمان می آوردید. زیرا او درباره من نوشته هست. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟